افسونه افسانه هر افسانه روایتی است از یک زندگی، زندگی پر فرازانشیبی نشیبی که میتواند برای هر کدام از ما اتفاق بیفتد. کافی است از هر افسانه درسی بیاموزیم و با دریافت پیام آن در مسیر درست زندگی قرار بگیریم. میخواهیم یکی از افسانه های کشور یونان را برایتان روایت کنیم به نام سیکو و کوپی اگر همچنان ما را با برنامه افسانه افسانه همراهی میکنید شما را به شنیدن این افسانه دعوت میکنید تا پیش در سرزمین یونان پادشاهی زندگی میکرد که سه دختر داشت دخترهای پادشاه همگی زیبا بودن اما دختر کوچکتر اون به نام سیکو زیبایی خیره کننده ای داشت سیکو از دو خواهر دیگش زیبا تر بود و همه مردم سرزمینشون مبهوت اون همه زیبایی بودن با این حال این زیبایی برای پادشاه خیلی هم خوشایند نبود باید کاری بکنیم باید کاری بکنیم چی شده سرورم؟ اتفاقی افتاده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ امروز هر دو دختر بزرگمون ازدواج کردن و به خونه بخت رفتن حالا من و تو موندیم و سیکو که انگار میلی به ازدواج نداره خب اینکه خیلی مهم نیست سیکو از دو خوهرش کچکتره <تصفيق> چرا فکر میکنی سیکو بچه هست؟ اون 20 سالشه خود تو چند ساله بودی که با من ازدواج کردی؟ هجده ساله؟ بس سیکا خیلی هم بچه نیست بیس سالم خیلی زیاد نیست من نگران سن و سال اون نیستم عزیزم از این میترسم که نکنه سیکو هیچ وقت ازدواج نکنه چرا این فکر رو کنی؟ کافیه کمی به زندگی سیکو دقت کنی قدت متوجه جواب این سوال میشی واضح حرف بزن سرورم از بین حس دختر من، سیکو از همه زیباتره روزی نیست که مردم این سرزمین دسته دسته به قصر نیان تا سیکو رو از نزدیک ببینن همین امروز از مردمی که به دیدن سیکو اومدن شنیدم زیبایی ونوس که الهه زیبایی در مقابل زیبایی سیکو چیزی نیست خب اینو منم میدونم تو اینا رو میدونی و نگران نیستی؟ من هنوزم نمیدونم چرا باید نگران باشم برای اینکه این همه زیبایی میتونه برای دخترمون دردسر ساز باشه چرا چون خیلی‌ها به اون سعادت میکنن و ممکنه براش دردسر درست کنن دیگه دیگه اینکه این همه آدم که برای دیدن سیکو به قصد میان فقط میان که اونو ببینن هیچ کدومشون برای خاصکاری از سیکو پاپیش نمیذاره و این منو نگران میکنه خب حالا که فکرشو میکنم میبینم حق با شما سربرم تو این همه سال حتی یه نفرم از سیکو خواستگاری نکرده میدونی بیشتر از همه چی منو نگران میکنه چی؟ اینکه این همه زیبایی یه روزی ونوس و عصبانی میکنه و برای نابودی سیکو نقشه میکشه این چه حرفیه؟ داری با حرفات منو نگران میکنی؟ من ونوس خوب میشناسم. اون الهه زیبایی وقتی مردم دست دسته برای دیدن سیکو به قسمیان طبیعیه که عصبانی بشه و برای از این بردن دختر ما اقدام بکنه خب تو همچین موقعیتی ما باید چیکار کنی؟ نمی دونم نمی دونم. و همین ندونستنم هم سخت منو نگران می دونم. بله دوستان، پادشاه خوب میدونست که چه خطری سیکو رو تهدید میکنه. اما بشنویم از ونوس الهه زیبایی. همونطوری که پادشاه پیش بینی کرده بود ونوس از اینکه مردم دست دسته به دیدن سیکو میرفتن تا زیبایی اونو ببینن حسابی حسبانی شده بود. ونوس عادت داشت هر وقت عصبانی میشد به دیدن پسرش می رفت که به ایزد عشق معرف بود. اون روز هم ونوس تصمیم گرفت برای اینکه سیکو رو از میان برداره به دیدن کوپیت بره و با اون مشورت کنه کوپیت؟ کوپیت؟ کجایی پسرم؟ من اینجا مادر کجایی؟ چرا من نمی بینمت؟ من بالای سرتون هستم خدای من فراموش کرده بودم که تو میتونی پرواز میبینم که از مبد دل کندین و به دیدن پسرتون اومدین این رو به حساب دل مادرانه بزار خیلی وقت بود که دلتون برام تنگی نشده. الان وقتی گل گذاری نیست پس برای موضوع دیگه ای به دیدن من اومدین درسته خب من منتظرم ببینم ونوس الهی زیبایی برای چی این همه راه اومده تا پسرشو ببینم بچند میتونم حدس بزنم از چیزی ناراحت هستیم که به خودتون زحمت دادین تا اینجا آمدین درسته درسته هم ناراحتم هم عصبانی خب وقت با... دلیل این همه ناراحتی و عصبانیت چیه؟ سیکو سیکو؟ سیکو دیگه کیه؟ اون دختر پادشاه یونانه چرا اون دختر باید انقدر الهی زیبایی رو ناراحت و عصبانی کنه؟ چون در زیبایی نظیر نداره یعنی در زیبایی با شما برابری میکنه اون از منم زیبا تره <تصفيق> خدای من نه این امکان نداره داره کوپیت داره شما اله زیبایی هستین مادر چون در زیبایی رقیب نداشتین اله زیبایی شدین بله بله اما خیلی وقته که معبد من بازدید کننده این نداره کوپیت. خیلی وقته که همه به جای دیدن من به قصر پادشاه میرنم تو سیکو دختر کوچک پادشاهو ببینن و زیر لب تحسینش کنن خدای من مردم یه زیبای فناپذیر رو به من که علاقه زیبایی فنا نپذیرم ترجیح میدن خبا چه کاری از دست من ساخته است؟ پسرم تو ایزد عشقی کوپیت هیچ کسی در آسمان و زمین نمیتونه در برابر تیرهای عشق تو تاب بیاره <تصفيق> خب تو ایزد قدرتمندی هستی قدرت تو به کار بنداز و کاری کن که این دختر گستاخ در اشق پلیدترین و خارترین اهریمنی که روی زمینه گرفتار بشه من جز اطاعت چاره دیگه ای ندارم مادر پس منتظر روزی میشیم تا بدبختی سیکو رو با چشمانمون ببینیم <تصفيق> لطفا؟ قبل از رفتن به من بگیم که کجا میتونم سیکو رو ببینم تو نیازی به دیدن اون نداری نگران نباشین پسرتون آشق سیکو میشه. ولی باید اون ببینم تا بتونم یه اهریمن سر راهش بذارم برای دیدن سیکو کافیه یه خود تو همراه جماعتی که به دیدن اون میرن به قصر برسین اون در قصر پدرش زندگی میکنه باشه مادر خیالتون راحت قول میدم همون کاری رو بکنم که ازم خواستیم مدتی بعد کوپید همراه سایر مردم به قصر میره تا از نزدیک سیکو دختر کوچیک پادشاهو ببینه و نقشه مادرشو عملی کنه اما به محض اینکه چشمش به سیکو میفته یک دل نسد دل عاشقش میشه کوپید که خودشو در دام عشق سیکو گرفتار میبینه به معبد آپولو میره و از اون میخواد که کمکش کنه آپولو هم قبول میکنه تا اینکه چند روز بعد پادشاه نگران سیکو میشه و برای کمک از آپولو به معبد آپولو میره سلام بر آپولو ایزد مهربانی سلام بر پادشاه مختدر یونان میدونم که از دلیل اومدنم به این معبد خبر داریم ولی باید راز دلمو به تو بگم تا بتونی کمکم کنیم میشنوم. حتما وصف زیبایی خیره کننده ی دخترمو شنیدیم سیکو در تمام یونان در زیبایی همتا نداره شنیدم این روزها مردم حتی وقتی به معبد من بیان، درباره دختر سیکو و اون همه زیبایی حرف میزنن درد منم همینه با وجود اینکه دخترم زیباست اما هیچکس از اون خاص کاری نمی کنه هیچ کس برای ازدواج با اون پیش قدم نمیشه تازه این کار دست منه بگو میشنوم. زیکو باید لباس سوگواری بتن کنه و به بلندای قلی سنگی بره و همونجا منتظر بشینه تا همسر آیندش از راه برسه و با او ازدواج کنه ولی... ولی دختر من تا به حال از قصر خارج نشده جناب آپلو. می دونم. اما این تنها راه ازدواج کردن دخترته فوراً به قصر برو و دخترتو برای بردن به قله کوه سنگی آماده کن بسیار خوب از سانگ کارو انجام میداد شاه به قصر برمیگرده و همون که آپولو گفته بود عمل میکنه اون از سیکو میخواد که لباس عذاب بکنه و بعد هم همراه همسرش اونو به بالای قله کوه سنگی می‌برن. چی شده پیتر؟ چرا ناراحتی؟ برای تو ناراحتم دخترم. دیدن تو تو این لباس عذابم می‌ده. از ما ناراحت نشو دخترم. فقط فقط به ما قول بده که مراقب خودت هستی نگران من نباشین مادر اونقدر بزرگ شدم که بتونم از خودم مراقبت کنم کاش <مم> میدونستی همه این کارا به خاطر خودت سیکا میدونم <مم> می پدر میدونم که برای چین و تنم کردین و منو به اینجا آوردی. منو پدرت خوشبختیه تو رو میخواییم سیکو اونجور که آپولو میگفت بعد از اینکه که منو پدرت از پیشت رفتیم تا هم آینده آیندتو پیدا میکنیم <مم> من که اعتراضی نکردم مادر حالا ازتون میخوام که با خیال راحت به قصد نمی نمیترسی دخترم؟ نه بدر نه چرا باید بترسم شما مادر به قصد برگردین منم روی این گله سنگی منتظر میمونم تا تقدیرم از راه برسه بر شما رو به آرزتون برسونم. بریم سیکو تنها و افسرده روی قله کوه سنگی نشسته بود پادشاه و همسرش با حسرت از اون دور می ناگهان نسیمی می, می و سیکو رو با خودش به پایین قله سنگی می بره سیکو وقتی به خودش میاد می که در یک مغزار زیبا نشسته که چشم سار زیبایی از وسط اون جاریه سیکو به اطرافش نگاهی می کنه و چشمش به قصر باشوکوهی می افته. خدای من این تو چه قصر, قصر بزرگ و باشتگویه در تمام عمرم یه قشنگی ندیده بودم این قصر از قصر پدر هم هم و زیباتره این قصر ماله سیکو. تو سیکو تو تو کی هستی؟ نه تو کی هستی؟ چرا من نمیتونم ببینمت؟ از من نه ترسی من همسر تو هست همسر من؟ اولی, اولی من که ازدواج نکردم میدونم اما به زودی منو تو با هم ازدواج میکنم تو تو کجا هستی؟ چرا من نمیتونم تو رو ببینم من فعلا نمیتونم پدرمو رو به تو نشون بدم اما به زودی به دیدنت بینم حالا برو داخل قصر اون قصر با تمام وسایلش متعلق به تو من؟ آره اونجا خونه ی کجا میری؟ من جایی نمیرم. همینجا هستم و از دور ازت مراقبت میکنم. باشه. از خودش رو به نشون بده در آسمان پنهان شده بود و از همون بالا با سیکو حرف می زد سیکو با وحشت وارد قصر شد قصری زیبا که تا اون موقع به چشمش ندیده بود <تصفح> وای خود من اینجا چقدر قشنگه از قصر پدرم هم زیبا خوشحالم که <تصفح> از اینجور خوشت اومده ازت ممنونم این تو خیلی بزرگه. اون بیرون خیلی قشنگه. همه چیز عالیه. آره. همه چیز عالیه. ولی به زودی خطر بزرگی تو رو سرت میکنه. چه خطری؟ یکی دو روز دیگه دو خواهر به اون قله سنگی میرن که تو لباس سوگواری پوشیده بودی. خوب بعدم با همون نسیمی که تو رو به اینجا ورد به اینجا میرفسن. خوب اساس میخوام اجازه ندی خواهرانت تو رو ببینن. ب... منظورت چی؟ اگه اونا تو یا منو ببینن؟ برامون دردسر درست میکنن ولی من دلم میخواد اونا رو ببینم اونا خواهرای منن دلم براشون تی میشه این یه اختار سیکو دلم میخواد به این اختار توجه کنی تا خطری تو رو تهدید نکنه. قول بده سیکو قول بده که مراقب هستی و اجازه نمیدی خواهرانت وارد این قصر بشن باشه قول میدم سیکو به کوپیت قول داد که اجازه نده خواهرانش وارد قصر بشن اما چند روز بعد که خواهرانش به مغزاره کنار قصر رسیدن سیکو قولشو فراموش کرد و رو با خودش به داخل قصر برد دو خواهر از دیدن قصر به اون زیبایی به سیکو حسادت کردند و با کل باری از بغز و حسد به خونه هاشون برگشتن بعد از این ماجرا کوپیت سخت از سیکو دلخور شد کوپیت کوپیت من اینجا سیکا ببینم چرا بعد از این همه مدت به من اجازه نمیدی که ببینمت؟ این به نفع هر دومونه اگه به کارهایی که بهت میگم عمل کنی میتونی به زودی منو ببینی و تو آخر عمر کنار هم باشه اون روزی که خوهران به خونه این من مدن از دیدن قصر به اون زیبایی حیرت زده شده اونا حیرت زده نشده اونا به تو و زندگی تصادت کردم منظور چی؟ منظورم اینه که خیلی باید مراقب کارایی که میکنی باشی تو به من قول داده بودی که اجازه ندی اونا وارد قصر بشن اما به قولت عمل نکردی آره منه ببخش من نتونستم در خواسته هاشون مقاومت کنم نیدونم ولی امیدوارم از این به بعد مراقبت کنی اونا شاید دیگه اینجا نیان کپید اشتباه ند اونا به, زودی به اینجا میان. ولی باید به من یه قولی بدی. چه قولی؟ اونا وقتی به اینجا اومدن، تو میخوان که همسرتو بهشون نشون بدیم. باید قول بدی که همچین کاری نکنم. من هنوز تو رو ندیدم. چطور میتونم تو رو به اونا نشون بدم؟ اونا زیرک و باهوشن. خوب می‌دونن چطور تو رو متقاعد کنن که منو بهشون نشون بدی چون میدونند تو قلب مهربونی داری. و همین دلیلم هم سعی میکنند با حرفاشون وسوسه کنن که منو بهشون نشون بدیم. نگران نباش کوپیت. من هیچ فکری نمی‌کنم که مجبور بشی خودتو به حرم نشون بدی. امیدوارم این بار به قولت عمل کنی. با این حال می‌خوام بگم که من خیلی زود خودم را به تو نشون میدم. راست آره، باید. آره. اول شبی که ماه کامل بشه، من وارد قصر میشم و روی تختی که از طلا ساخته شده می‌خوام. اون وقت تو میتونی منو ببینی. بعدم کنار هم زندگی مشترکمون رو شروع کنیم. خیلی خوبه کپیت خیلی خوبه فقط باید به قولی که به دادی عمل کنم خیلیت راحت باشه من اینقدر به تو علاقه دارم که بتونم در برابر خوهرام سکوت کنم و تو را ازشون پنهان کنم شیستا و سینتا خواهران سیکو به دیدنش اومدن اونها از دیدن وسایل طلا و نقره که در قصر سیکو بود متعجب شدن و باز هم آتش حسد در دلشون شعله کشید به همین دلیل با هم نقشه کشیدن کشیدند تا زندگی خواهر کوچیکشون تباه کنن ما باید یه کاری بکنیم شیستا منم به همین فکر میکنم سینتا زندگی سیکو خیلی عجیبه قصشو ببین حتی تو شبم مثل یه ستاری میدرخشه صندقچههای پر از طلا رو دیدی دیدی چطور دستای منو تو رو پر از طلا کرد زندگی منوتو در برابر زندگی سیکو خیلی بی و کم مقداره همینطوره من نمیتونم ببینم سیکو بدون هیچ زحمتی داره در چنین قصری زندگی میکنه دیدن سیکو تو همچین قصری برای منم دردناکه برای همینم من و تو باید رو روی هم بذاریم و نقشه ای رو کنیم. چه نقشه ای؟ نمیتونم مشکل اینجاست که سیکو هیچی از شوهرش به ما نمیگه اون به ما گفت که شوهرش به شکار رفته <تصفح> تو چقدر ساده ای شیستا اگه شوهرش به شکار رفته بود تا حالا باید به خونه برمیگشت ما دو روزه که اینجاییم اما از شوهر سیکو هیچ خبری نیست راست میگی اصلا من نمیدونم این چه شوهریه که سیکو هنوز اونو ندیده و فقط باش حرف میزنه نکنه نکنه سیکو به ما دروغ گفته نکنه واقعا شوهرشو میبینه ولی داره اونو از ما پنهان میکنه نه تا نه سیکا هیچ وقت دروغ نمیگه اون اصلا بلد نیست دروغ بگه <محن> وقتی میگه شوهرشو تا حالا ندیده حتما ندیده به نظر <محن> من به نظر تو چی شیستا؟ شیستا؟ خودشه چی خودشه؟ فهمیدم چی کار باید بکنم سینتا منظورت چیه چی و باید چی کار کنی؟ با من بیا تا برا توضیح بده سیکو وارد قصر میشن حسادت عقل و هوش اونا را از بین برده بود شیستا نقشه یو که در سر داشت با سینتا در میون میذاره و بعد هم هر دو پیش سیکو میرن تا نقششونو عملی کنن چیزی شده سینتا نه سیکو نه چیزی نیست تو یه چیزی بگو شیستا اتفاقی افتاده؟ اتفاق نه ولی ولی راستش من و سینتا خیلی برای تو نگران نگران؟ برای چی من زندگی خوبی دارم توی این قصر همه چیز دارم در کنار همه اینا یه همسر دارم که خیلی خوب و خیلی خوب و این اینجا حرفی خواهر ساده من چطور میتونی از کسی که تو حالا ندیدیش اینطور تعریف کنی درسته که ندیدمش اما میدونم که خیلی خوب و مهربونه سینتا تو اصلا میدونی اون کیه پدرش کیه مادرش کیه کجا به دنیا اومده چند سالشه زیبا زشته اه. نه جواب هیچکدوم از این سوالا رو نمیدونم ولی میدونم که خیلی مهربونه وای امان از قلب ساده ی توسیکا. امان شما چه چون شده چرا این حرفا رو چون ما میدونیم شوهرتو کیه مهم. راست میگی؟ شماها اونو میشنستین؟ بله اون کسی نیست جز یه اجده های که داره با چرب زبونیاش تو رو فریب اون قصد داره وقتی اعتماد تو رو جلب کرد به این قصد بیاد و تو رو به قتل برسونه آه. ما خیلی نگران تو هستیم سیکو نمیتونیم بدون تو از اینجا بریم آه ولی ولی من چطوری میتونم اینجوره ترک کنم و با شماها بیام اینجا خونه منه من من همسرم رو دوست دارم از تو تعجب می دختر تو چطور میتونی اونو دوست داشته باشی در حالی که حتی یه بارم ندیدیش مم. اگه اونم به همین اندازه تو رو دوست داشت تا حالا برای یه بارم که شده بود خودش رو به تو نشون میداد. ولی می که حتی یه بارم حاضر نشد خودشو به تو نشون بده. تردید نکن سیکا تو باید قبل از اینکه اون اقدامی کنه اونو بکشی. بکشمش؟ ولی ب... ولی چه باید به محض اینکه خودش رو به تو نشون داد با خنجری که بهت میدیم اونو بکشی. واه ولی ولی که قرار نیست خودش رو به من نشون بده. اون یه اهریمنه. یه های درنده خو یه شب یا یه روز چهره واقعی خودش رو بهت نشون میده. باید وقتی که خوابه بری بالا سرش و با خنجر بزنی به قلبش. تا دیگه نتونه به تو آسیبی برسونه. ولی تردید نکن من... عقلت تو به کار بنداز آه. تو که نمیخوای با این همه زیبایی کشته بشی ما... یا همسری اهریمن بشی میخوای؟ آه. آه. نه نمیخوام پس رنگ نکر بیا ام. این خنجر رو بگیر و کار همسرتو تو یه سر ببین سیکو اون درباره این که کی میتونه خودشو بهت نشون بده چی نگفته؟ خب راست چرا گفت؟ گفت که اولین شبی که ماه کامل بشه میاد روی تخت طلایی میخوابه پس معدل چی هستی؟ فردا شب ماه کامله. اون فردا شب با پای خودش وارد قصر میشه. تردید نکن سیگو، تو باید قبل از اون دست به کار بشی و خودتو از دست اون اهریمن خلاص کنی. نگران نباش. منو شیستا هم تو همین قصر منتظر میمونیم و مراقبیم تا اون اهریمن به تو آسیبی نزنه. راست میگی سینتا؟ معلومه که راست میگه. تو خواهر مایی. نمیتونیم که در چنین شرایطی تنهات بذاری. خیلی خوب. به نظر من بهتر زودتر بریم بخوابیم. فردا صبح به تو میگیم که چطور میتونی از شر اون شوهر خبیث راحت بشیم شب شیستا و سینتا به سیکو گفتن که کی و چطور باید شوهرش رو به قتل برسونه سیکو با اینکه می ترسید اما از اینکه قرار بود با یه اژدهای اهریمن ازدواج کنه بیشتر واهمه داشت به همین دلیلم میخواست مو به مو خواسته های خواهرانش رو اجرا کنه تا اینکه شب از راه رسید در حالی که ماه کامل بود سیکو خنجر را برداشت و به سراغ کوپیت رفت که روی تخت طلایی خوابیده بود. من می ترسم سینتا نترس سیکو تو دختر شجاعی هستی مطمئنم که از عهده این کار بر میای سینتا راست میگه تو نباید خودتو ببازی تو دختر پادشاه این سرزمینی حق نداری از چیزی بترسی ترسی اگه بیدار شو چی اگه منو کش اون الان به خواب عمیقی فرو رفته نیمه شبه بهترین زمان برای کشتنشه نه ترسی کو. برو در اون اتاق رو باز کن و برو تو اتاق بعدم به طرف تخت طلایی برو خنجر رو تو قلب اون اهریمن فرو کن باشه باشه شما برین. نمیخوام می اتفاقی براتون بیفته باشه باشه تو برو خدا حافظ برای کمکم کن باید این دارو با ایتیات باز کنم چرا دستا می لرزه به خودت مسالت باشتی تو نباید بترسی نباید بترسی خب حالا دستاتو ببر بالا و خنجر رو تو قلب اون دیوی که زیر رخت خوابا خوابیده فرو کن ها. ام د... آه. تو کی هستی؟ او را جهنم <تصفيق> چ... چی کار میکنی سیکو دستان زخمی کردی بده منو خنجم چ... چی کار منم کپیت ده... تو تو منو بکشی سیکا تو تو اجدهان نیست چی گفته که من اجدهان تو احریمن نیستی؟ معلومه که نیستم یه من چطور میتونه آشغ بشه سیکا؟ یه من Par وای وای بر تو اونا به من گفتن که تو یه اشته دیپ دیبصفتی یه من که قصد داری منو بکشی برای همینم هم خنجر برداشتی اومدی سراغم اومدی که منو بکشی منی که اون همه عاشقت بودم آب کپیس منو ببخش تو تو چرا با این همه سیبایی خودتو به من نشون ندادی چرا به من نگفتی تو همون کپیدی که ای سده چرا به من نگفتی کوپیت من بارها ازت خواستم مراقب رفتارت باشی گفتم بحفه دیگران اعتماد کن همه چیزو خراب کردی سیکو همه چیزو سپ کوپیت کپیت داری میری در از دست خون میره بسه من دستتو ببندم نه نیازی نیست این خون بوی خیانت میده خیانتی که تو در حقم کردی این خیانت پاسخ کدوم یک از بیمهری های من بود؟ منو ببخش کپید خواهش میکنم منو ببخش نه سیکو میدونم که این نقشه هم از نقشه های بوده من درباره اونا به توشتار داده بودم تو تمام این مدت من وفاداری و صداقتم رو به تو ثابت کردم اما تو با خیانت جواب اون همه اشقو دادی د -د -د کوپیت کجا داری میری؟ تو نباید منو تنها بزاری خواهش میکنم کوپیت. من... نمیتونم با زنی ازدواج کنم که در جواب عشقی که بهش دادم بهم خنجر میزنه جواب عشق، عشق سیکو خدا برای همیشه کپی منو ببخش کوپی خواهش میکنم منو ببخش کپی برای همیشه از اون قصر رفت و سیکو تنها ماند خواهران سیکو هم که به خواستشون رسیده بودن از سیکو میخوان که همراهشون به شهر بره سیکو همراه خواهرش به قصر رفت و تا زنده بود در حسرت فریبی که خورده بود و خیانتی که به کوپید روا داشته بود زندگی کرد بله دوستان این هم از افسانه سیکو و کوپید که یک افسانه یونانی بود و به ما آموخت که جواب عشق جز عشق نیست افسانه سیکو و کوپید تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی آزیگران به ترتیب اجرا محروخ افزلی، احمد گنجی، نوشین حسنزاده، فریبا تاهری، فریدون مهرابی، مهدی تهماسبی، نگین خاج نسیر، مندانا محسنی، سیما خوشچشم کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور نازنین حسن صدابردار حیدر صفتری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده از زندگیت، افزون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهٔ دیگر بدروت